بسم الله رحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و سرات و السلام على اشرف الانبیاء و سيد المرسلین و آله و صحبه اجمعین اما بعد اشاره کردیم به آیات فاد الله تاریخی که در بحث خطرات و مده قفتیم که مسائل حدیثی و مسائل اخلی که در این زمنش اشاره میشه در زمن فدرت انسان موکل ببنیم جلسی او هندکم بلوزم فسیح فما انشاء الله سعی میکنیم اون عدله ای که اومده و سریح هست در باب فطرت به ششاره بکنیم. و اگر شبهاتی هم هست پاسخ بشه بریم و عدله اخلی هم بگیم. حالا آره نمیدونم این که بحث فطرت چقدر طول بکشه. این باید که من میبینم شاید موحث خیلی شاید کشیدی بشه. طولانی بشه چون مسئ علی زیادی سر بحث بح و رو بحث نمی برم اتضال و بحث قدریه و اشاعه و ما بحث زیادی در بر میگره همین بحث پسن که ما فکر نکنیم که من فکر کنم شخص فکر نکنم که بوسم در این مرحله که ما فطرست را گرفتیم یکی از علائم و یکی از دلایل وجود الله در اینجا بخوام جای بکنیم و جا بدیم. هرچند که جا داره. چون بحث رد شده ما این شاقی و کافی جوابش رو بدیم و بدیم و مشروعات برطرف رو بگیم. اینکه الان ببینیم بررسید بکنیم تحلیل بکنیم چه مباحثی رو باید موکن بشه به بحث حضا و خدر چه مباحثی باید اینجا خاطف داده بشه. که انشاءالله توفیق از خدا میخوام و اعانات ازشان مني بحث هذا ليس كذا السنة صحيح ومدد. أولاً هذا ليس كذا صحيح بخاري ومدد. ثالثاً دليل دليل الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة كما تنتج البهيمة بهيمة جمعة هل تحسنون فيها من جدعان حديث البخاري ومسلم كتبت اقول رجلين تلاوت میکنن فتر الله الذي فطر الناس عليها لا انهدين لخلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم كين جلسه پیش اشاره کردیم رسول الله صلی الله عليه وسلم چنین میفرمایند هر شخصی که به دنیا میاد در ذات خودش فطری داره سپس پدر و مادرش و ابواب او برو یهودی میکنن یا نصرانی میکنن یا مجوسی چرا قو... چرا نگفت مسیحی چرا گفت نصرانی آیا درسته به این نصرانی ها میگن مسیحی لغت درو جون مسیحی درستی چرا چون اگر بگیم مسیحی یعنی تعریفتون کردیم که اینا تابع یک مسیح هستن اینا تابع مسیح نیستن واسه بهشون بگیم نصرانی میگه همونطور که حیوان چارپا بهیمه همطورت یعنی تولد میکنه و به دنیا میاره جمعا حیوان چارپایی که سالمه از لحاظ بدنی و جسمی حل سحسونه فیها من جدا آیا میان فرزندان اون تا حیوانی که سالمه؟ حیوانی میبینید که از اون چیزایی دونی آمده میبینید گوش بریده و بینی بریده و نمیدم چش بریده باشه؟ نیست. زاد خودش یک کیونی به دنیا بیاد. گوش بریده باشه نداره. شاید نقص خلقتی داشته باشه. ولی بریدیگی درش نیست. بینیش بریده باشه نیست. خوش بریده باشه نیست. فطرتی هست؟ همونطور که در حیوان، وقتی که به دنیا میگرد این حیوان سالم، خودش سالمه، فرزندش سالمه، فطرت انسان هم هم فطرت انسان سالمه. کی عبدش میکنه؟ خلق خدا؟ بندگان عبدش میکنه. بعدی ها میگن این حدیث نسبت دادنش به رسول الله قسمت دومش، یعنی افا با و ها و یو و موضوعه. این در از مدرجه از قول ابو هره هست و ابو هره هم فهمیده و بدم نفت کرده همانطور که غره رو بر فهمیده می که میاد تا آرنجش گذو اولا ابو اگر شخص قلع از ابو بود شاید معذتون قبول می شهدی. ولی ابو هره به حس و اونجا هم اون چیزی که از رسول الله بود نقرده بود. اون قسمت از فعلش به اجتهادشه. فعلش تا آرنج تا باست شانش میشد. لیکن در قول هر کم زیاد کرد. خیر. اینجا چه دلیلی هست. بر اینکه که ابو حلال بد فهمیده. و این قسمت را از جیب خودش گذاشته. هیچ یک از علما قاطبتا دومن هیچ یک از علما قاطبتا نگفتن که این در این حدیث مدرجی حاصل شده که ما بگیم این مدرج نسبت به رسول الله موضوعه هیچ یک از علما مو که بیاد این تهمتی را حضوره به وارد ایشون بگن نه هیچ از علما هم این تینچین تهمتی به حضوره به حضور وارد نکردن که شما الان دوومی شدید حتی فالتزله حتی اشعره ابو هرث معروف بود این جی که شما میکنید به ابهره نیاز مدرک بید. شاید در اداد یک عمل استنتاج بکنه شاید, مش... شاید یک جاده که به پلت یک اجاد خاص فرش داشته باشه. ما باش موافق نباشیم. لیکن در نقلش هیچ یک از آدمای اهل سنت اختلافی ندارند که ابو ابهره آنچه که شنیده هست نقل میکنه بود کمون گ. آننا به خاطر دعای رسول الله که دعا کرده هیچی فراموش نکنند و خودش میگد هیچی فراموش نکرد. چهارم شما مشکل با ابو چون با عقلتون جور در نیمده مشکلشون با ابو هره رو خب اگر ما براتون همین حدی با همین معنا از صحابی دیگر رو چی میگید؟ یک شب بگیم حالا شاید یک مشکلی تعارضی پیش مش من راویان ازش بند فهمیدن بلیه به صحابی شاید, شاید راویان بفهمیدن. إذا كان لديك رواية بشرديك صحابي، أو إذا كان رواية بشرديك، مثلا ما رواية بعد من الأسود ابن سريع عن الأسود ابن سريع رضي الله عنه صرائنا سريع عن الأسود ابن سريع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ خياركم أولاد المشركين ما من مولود إلا يولد على فطرة الإسلام حتى يعرب عنه لسانه فأبواهو يحویدانه و ينصرانه و يمجسانه اونجا ابو هره ربت فهم میده بود و از جیب خودش گذاشته بود ما؟ خب اینجا چی میگید؟ فأبواهو همون لب همون لب فأبواهو يحویدانه و يمجسانه و ينصرانه همون لب دباتم اینجا داریم خب الله چی میگید؟ این روایت هم در ابن حبان در و سبرانی در سقیر اوسط با اسناد صحیح آمده که اصنادی که یه جو درش ابن حجار و غیر و غیر و ابن حبان و تعداد زیادی از علمات اصحیحش کردن و کدی هم حیبی از این اسناد دنه ای خب الله چی میگید؟ ما روایت زعیف هم داریم از کل جاور ابن عبدالله در نزد احمد داریم دیدی که در افرش هم که من نگو بردم نگو بدم یه چیزی که حتلا این روایت چون کامل خوندم، این قسمت فقط بقید بهتون شرح بدم. اولیس خیارو کن اولاد و المشتیکی. شاید تو بیاد. آیا بهترین شما فرزندان مشتیکی نیستن؟ یعنی فرزندان مشتیکی، آیا بهترین شما؟ یعنی بهترین شما از اطحابی که جلو من هستید. بهترین شما. کسانی نیستن که فرزند مشتیکی ابو ابوبکس. او بکه اولو فدرش شد. عمر، عثمان. اینا فردندان مشریکی بودن یا نبودن؟ به نسبت صحابه اولی سرخیار اطمار اولاده مشریکی. آیا بهترینین شما؟ کسا اینیتن که جزو جز بهترینین جز بهترین شما کسا اینیتن که فردندان مشریکی بودن؟ یا حتی لغت صافت می که بعضی ها ادعا دارن که اگر لغت عربی بلد باشی، هر طوری خاصی از حدیث میتونی استنباط و استنتاج استمتاج نمیشه. <تصفيق> باید باز به جایی که شروح ائمه، باز حدیث رو کنار هم بذاری، باز فهم علما، باز سهم اصحاب نگاه بکنی. نه اینکه فهم خود مستقلاً، از فهم خود مستقلاً استنتاج بکنی و بیای بگید برای فرزندان مشکین از صحابه هم بهتر. این نمیشه. این حدیث برای خودش مفهمومی داره، واقعی داره که باید دون و واقع بگیرید. از جمله احادیث، احادیث احادیث ابتدادر میثا، خود في الشرح ون آية ، أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم في ذلك المؤمن كما أرى بأربعالي في كتب هذه التفسير يظهرون أنهم في ذلك المؤمنين في ذلك المؤمنين في ذلك المؤمنين حدثنا بن مالك ناس إمام مسلم هم شين أحمد بن حنبال الله إذا أردت من كل مؤمنين ، أردت إمام أحمد عن ناس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء اكونت مفتديا به میگه در روز قیامت یک شخص اهل جهنم گفته میشه آیا اگر به اندازه دنیا ملک داشته باشی اون چیزی که در روی دنیا هست در زمین هست مال خودت باشه آیا بخاطر که از جهنم نجات پیدا بکنی فداش میکنی صداش می دی قال فایقول نعم میگه آی فیکول قد اردت منك اهول من ذلك من از تو خواستم نخواستم که هرچی داری نفقه بده و انفاق بکن. قد أردت منك أهول من ذلك كيف تردون هذا قد أخذت عليك لا أقول صريحة قد أخذت عليك في ظهر آدم قد أخذت عليك في ظهر آدم بختيك في الكامير آدم هذا التعهد قررت أن لا تشرك بي شيئا كبراي من شريك شيء شريكنا ياري يعني شيء يعني فقط منو بفرستی، پرستی سعبيت الا ان تشرك بي نخص مگر اینکه مشرک بشی خودت نخصیده صورت برخلاف میل و فطرت بر برخلاف آن چیزی که من در نهادت و در درونت گذاشتم از جمله احادیث حدیث که خداوند یا رسول الله علیه و صلی علیه سلم اشاره میکنه برای اینکه انسان در توحيد خلقت شده برشناق توحيد حديث عياض بن حمار المجاشدي رضي الله عنه عياض بن حمار بياتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ذات يوم في خطبته في خطبه سني يفرمى كل مال نحلته عبدا حلال هر مال خدابا ان دي كي الا رسول الله صلى الله عليه وسلم سني يفرمى في خطبش الا ان ربي امرني ان اعلمكم ما جهلت خدایوند سرای پروردگار به من دستور دادن که اون چیزی که یاد داده شدم به شما یاد بدم از اون چیزهایی که نمیدونید مما و يوم از آنچه که الان به من یاد داده کل مال نحلت عبدا حلال خدایان میگه هر چیزی که از مال دنیا به بنده دادم حلالش باشه و انی خلقت عبادي هنافا كلهم واني خلقت عبادي واني قداهم يفرمايت واني خلقت عبادي هناءه كلها هما بندقام را علي مائل الشرك موحد موحد قداشنات خلقت هذا وانهم اتدهم الشياطين فجالتهم عن دينهم كثاني عمره گوراکه ادا که قیامت می زن اونها هم منحرف و حرمت علیهم ما أحللت لهم فان بران شهر بران بر حرام کردند آن چیز حلال ساختم و امرتهم ان یشرکوا بی ملم انزل سلطانا فدستو دستو به شرف بیارند ازجاست گیز دلیل مدرک نگذاشم. اینه که عقلشونم به کار ندادن فترتشونم نگاه نکردن که به این مسئله پی ببرن پس گمراه سادی باید صورت بگیره که انسان از این خارج بشه اگر نه فترت پاک و انسان خدا شناس این حدیث در صحیح مسلم در صحیح مسلم حدیث ایاب عياض بن حمار حب نحن بحث عدلية عقلي عدلية عقلي شنينة أولا هر انسانی اگر ما در نظر بگیریم هر انسانی به طبیعت حالش از مسلمان کافرش ما الان بحث مسلمان رو نمیده بحث عموم مردم را رو می اگر یک اختیار بشه در دو تا مسئله یک مسئله خوبی یک مسئله بده آیا انسان عاخلی، انسان عاخلی میاد آنه بد انتخاب بکنید گنوان مثال. دیوانه هم ثابت حتی انسان دیوانه هم ثابت می شود. مجفور بیارید با اون بیردن بیردن بیردن باشید. از اکرام کم الله این این مسال رو فقط این مسال رو بیدنم برای اونهایی که نمی خواهمدن. مدروع بیاری برهی دیوانه و یک خذای قشن مثلا بوس و سید از دنیا بهش بدید کدو میگه انتخاب میکنه شکی دارید از که میبین انتخاب میکنه شکی ندارید هیچ دیوانه نیست که ادوار کنیشه یا مدروع بخارم نجا خب این طبیعت حال انسانه اینو میخوام بگم در, انس... در... در نفس انسان انسانیت انسان هر عقل که عقل نداشت و شعوره داشته باشه یک قوت غریزی از یک اراده درونی هست که خیرخواهه، دنبال مسلحتشه. اون دیوانه نمیاد خار بخوره. همینا آه هم میخوره دنبال غذاست شد دنبال غذا آبه دیوانه عاشق ولی مصلحت خودش رو میشناسه خو این مصلحت دنیوی چطور که نمیتونه تشخیص در مطلحت فردا روزی قیامتی هر فردا کجا میخواد بره یعنی این قد نمیتونه فکر بدنه انسان عاقل. دوم، هر انسانی ما در دنیا میخوام نگاش بکنیم میبینیم که هر کدوم از ماها دنبال مطالح خاص خودشه محبت منفعت شخصی خودش داره. میخواست خودش نفی برسد. ما همون من دنبال منافع شخصی خودمون میخوام بخوابیم چون طاقتش ندریم سرمون درد میکنه میخوام بخوریم چون گرست این را تحمل نداریم حب غذا رو داریم حب خوابیده دار رو داریم حب فلان و فلان و فلان و همسر و, و فلان داریم هر انسانی حتی یک تفل کوچکی که به دنیا میاد اصل بر اینه که این طفل دنبال شیر مادر باشه شیر مادر بینیشه یا که سروم بهش وقت بشه اصل چیه؟ اصل اینه که اون طفل حب به مسیدن شیر رو داره اول که بسنی هم میان میمکی آب هم بهش برید میمکه تا یک سال جا لیوان بذارید اول زبانش بیرون میاره میخواد بیلیسه میخواد مکه اون آب به مکه نمیتونه تجربه بکنید این قدرت رو خداوند درش گذاشته این اراده رو خداوند درش گذاشته پس یک اراده شما نمیتونید این اراده ها رو منفی واقع بدید یعنی منفی بکنید کلا این اراده هایی که خداوند این حب ذاتی حب فردی خداوند در ذات انسان گذاشته یا به عنوان دیگر انسان برعکس حیوان توانایی و کشش درک و یاد گرفتن رو داره. من دارم با شما سخن میگم. شما خود به خود تحلیل میکنین یه چیزهایی می نگیسید و این سم باز درست؟ درسته؟ یک حیوان رو بیارید اینجا. نماز بکنون بکن. بکنون. روز تکرار بکنه میشه این عوض بشه؟ نمیشه. چرا؟ شون قوت و اراده ذاتی نداره که من عوضش بکنم. یک اراده و یک قوت یک فترتی نداره که من فترت توحیدی و فهمی رو نداره که من بخوام بهش مورد خطو قرار بدم. لیکن انسان این قدرت و توانایی رو خود در فترت ذاتش گذاشته که بتونه بفهمه. بتونه محلحتش رو بکنه. و همه اوند کنه مرساله هم خود بکنه. کمی کتی اس بدی خوشش نمیاد مثلا اون صحابی میاد الان معادله یا رسول الله من به من اجازه چی نه نه نه من میخوام بگم حب لو حالا نه. حالا لا يحبون لهم ان اريد خب زنم تسرار میکنه. گوازت حب و ذالی که لخالت. خاله ولد نزیح حب کنه ذالی که لخالت. مردم برای خاله ها شدید سداره. خاضر مسلمان شده. و نیاز داره نمیشه هم ازباه شده. کسی انسان عاقل دسته داره که مادرش ببینه کسی دیگر. باش زنم بیکنه کسی هست. یعنی انسان مصلحتشو رو میده و میدونه به چیز داره. یک انسان طبیعی، یعنی یک دکتری که مثلا بالاق میشه. یک چیزی در فطرت ذاتش خدا میگذاره که دوست نداره مثلا به فرد کسی صورتش رو گیر. یک گوشی گیری دست میده و فلان میشه. هر انسانی به طبیعت حالش دوست نداره نخصو بره ندیده بشه. مگر این که ها عوض بشن. ما را بکشن. هندوز را بکشن. نمیاد ولی یهود واصفه عادی چرا فقط برای یهود عادی برای دیگر انسانها عادی نیست؟ تأیید ورثه به پدر و ای یو پدر است و مادر است که یادش ندان لغ بشه اگر نه انسان نمیخواد لغ بشه هندو و مرد پرست و هر که هست تو مشرک بود مرده پرست ولی لغ نمیشه در لی گفتم سه تا عادت چی بخاطر زنا و بخاطر فرماي درخیابانم یادت کن لطفش که معدده چی زنیش این عادی لازم نیست عدل لازم حس انسانی که من احساس داشته باشه احساس انسان چی نیکن ما گذاشت جماعت ابرو دیگه و بی قبل از این چند دهی حسر حاضر جامعی مجتمعی داشتیم که بدون دین و تدعین و دیانت باشه بدون عبادت و بدون خدا باشه. آیا بودن؟ نیست و بودن الان بله یه چند قومنیست آمدن و سعی کردن که این مفروب را به مردم برستن ولیش برشکست شدن برشکست کردن چون انسان به طبق غریزی خودش اینو میخوام بگم. میخواد به یک بزرگی بچسبه میخواد نقصه جبران بکنه. میخواد با یکی زرد، یکی بکنه. یکی که منفعت بهش برسنه. چون انسان ها منفعتش نسبیه. منفعت این که دست کتی بهش مگر الله. انسان خود به خود به یک نیروی متکاملی نهت قاطعه. مردم هم غازه. تو با اسلام همیشه روان داره گفتش پیدا میکنه کنه. یکی از دوستان ما بود. هلندی عبدالله ازش بود. که مدینه. ازش سوال کردم. تو چرا که مسلمان شدی؟ گفت که با دوچرخه می رفتم. هیپ ها می یون. خوردم به زمین افتادم. خلند شدم. گفتم چرا افتادم؟ کی مرا انداخت؟ گفت همین کی مرا انداخت؟ چطور افتادم همینجوری که افتادم. حتما یک قدرتی بالای قدرت ها. که سبب شد من می افتم. اگر نه من نمی افتادم. حریف هم. باقی دو همین بود از دو چرخ افتادن سبب شد که چی؟ مسلمان بشه. اینو من میخوام بگم. تساؤلاتی در نفس انسان سبب میشه که یک فلسفهی بساز از همون عرضی و زفراتش بگیر که دنبال و گشت خدا بکنه. تساؤلاتی هست سوالهایی هست که میکنه خودش من چگونه وجودم پدر مادر پدر و مادرم کجا وجود خب پدر مادری داشتن تا آخرش اونها کجا مالند تا وقت خدا این به خدا رسید این تساؤلاتی که ایجاد میشه کی میتونه جوابش بده غیر از خدا هیچ کس جواب بده چون خودش فقط مراه فریده خب این تساؤلات از کجا پیش اومد کسی به یاد کسی بهت گفت معلمی داشتی این شخص که دوباره سوال دو سرخه بوده هی میروند افتاد. کسی بهش یاد داد که باید از نفس خود سوال بکنی که تر آفرید که از کجا آمدی و چطور افتادی؟ یا یعنی که یک نفس یک چیزی در, در دلش و در قلبش خدا من نهاده گذاشته چکی درش یک چیزی در ذاتش خداوند گذاشته که میخواد این مشکل رو برطرف میکنه و مشکل رو حل بکنه. این احساس انسان هاست. و روز به روز مسلمان ها زیاد میشن. چرا بودارن مسلمان میشند؟ چرا اندونیزی بی اتمالش مسلمان میشه؟ چرا شهر اسلام را میبگیرند؟ بر بگردیم کنی به تاریخ؟ تجاره، وقتی که صدق اسلام می بینن، وقتی که میبینند نگاه بکنید همه همه بحث عقلیت بر بگردید بشید شدید بحث عزیزی اندونیزی، مالزی نه جنگی شده و نه با مسلمان ها با جه میلیون مسلمان فقط بزرطن کشور اسلام و انگلیزی در مصدر انگلیزی وجود دارن حدیری تو فنجام میدون دیریت کنی متلمون هست جنگ شده؟ صحابه رفتن نه تجاری از من بلند دار رفتن به تجارت دیدن که این تجار صادتا مخلصان دروغ نمیدن تونستن که خیریتشون رو ترجیح بدن برشه اون چیزی که شرم رسونه و بزرگ رسونه از دروغی و آدم کشتن و آدم کشی و فلان و فلان. هر چیز دنبال اسلام، دروغ نه میکنه، غیبت نه میکنه، نامامین نه. می... اسلام خیرخواهی، خیرخواهی اسلامه که نفر انسان تشویق میده، کشتن بده، دروغ گفتن بده. خب، هیتلر اینجینی هر می میزنه یا نمیدن افران افراد عرستن اینجینی هر می میزنه. هیچ چیزی جای شر نمیاد، اینجینی مصلحت های را، این شعور های را به انسان بده. این خداونده که اینجینی تشخیص ها ایران در نهاد ما گذاشته در درون ما گذاشته تا اینکه ما تشخیص بید ولی عرصه ای که نیکاری که هست سقرات عرصه فیسا فلسفه نتونسته که این مسالح را به مردم برسده و این مشکلات را پاسخ بده تنها کسی که منه جوابش بده شرق خدا و اون فترتی که انسان رو می به طرف چی؟ به طرف خدا منده کسانی که ما در نگاه کنی کسانی که در امت پیشین پیشیم بودن و اقرار به وجود خدا داشتن برقه ابن نوفر برقه ابن داشت قبل مبروش رسول الله صلی علیه و الله خیر دین مسیحیت کامل بود انجیل بود تورات بود همه تحریف شده بود چرا دین ابراهیم را تمام دینवंत خواب کرد دین دوشید چه چیزی رقم غیر از رقم نفس زیادن. چه چیزی سبب شد خطر نهاد که به شر بتپیوند به خاطر چی به خاطر این ای که احساس کرد که, که مسیحیت در با باطل ان چون گفتن ایسا فرزند خدا یهود هم گفتن فرزنده خدا اینا هم منحرفن اینا هم مشرک شدن اتخذ القوم عن هم مسجد شدن. اینا غیر خدا رو در نمیپرستن با با دلوقتي با دلوقتي من بود فراتش خدا بر بجردن و میاد محمدنا مثل الله عزم تعیید بکنه فرد فرد فترت هست یا نیست؟ فترت هست فنمیشه فترات رو انکار کرد قرآن سنت عقل و این هم حکار بیاد بگید اهل سنت عقل ندارن یا عقلشون به کار نمیبرن یا عقوارشون مطرح ما نداره این عقلمو چیزی داره که این عقلمون انقدره مؤتنین که خداون در نهاد ما رو داشته همونطور اون شخصی بذاریم بقر این چیز سوالاتی بهش پیش میاد به خدا برمیگرده ما هم این چیزین حوادثی که در جلو ما رخ میده ما رو به همین میکشه که ما باید خدا شراب باشیم طب چی شراب چیه؟ الچیه اینها اومدن أزملة فادلة، خصوصاً وجميعاً، فترة رانق كاربوكنا، هذا الوافل. شيء السبب في تلك الفترة رانق كاربوكنا؟ أولاً، بذو ترين بعد تحليش بيكونوا في فرمان دار فرعون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. لا تعلمون شيئاً. وَجَعَلَ لكم السمع وَالْأَبْصَارَ والأفادة لَعَلَّكُمْ تشعرون أن النحل أخذ عش في أخذ النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ودمان شوارد شكلهم هاي مدرنة فيروز لا تعلمون شيئاً وجه شهادنجان لا تعلمون شيئاً شيء دين مدارس كافيز فقط بفترك مشكلة وتمشينا لا تعلمون شيئاً أرى قفتن كشيء لازمش اینه که انسان فتره نداشته باشه آیا فتره اینه علم؟ آیا فتره اینه علم؟ چه اینه که مسئله خوسم دیگه جواب و قواته قشبه؟ فتره چیز دیگه هست؟ علم اشیز دیگه هست؟ ولو قعدا جواب خائز باید دوما بعض اهل سنت اگر منجر به نفی فتره سنتاً علمتش نید که قدریه اومدن حدری اومدن به این حادثه سلال کردن که کفر و گناه که از انسان پادر میشه به اراده الله نیست. کفر و گناه. چرا؟ چون رسول الله فرموندن که چی؟ فَأَبَوَاهُوا يُخَبُّدَانِ پدر و مادرش رو یهودی میگنند. خداوند بان رو روی اسلام خلقت کرده لیکن انسان ها هستن که کفر فدی رفتن نه خدا خداوند کفر برای انسان فدی و جوابشون خیلان راحت روزی اشخاصی میان نزد ما مالک این امام لالاکای در اعتقاد اصول اهل سننه نکو میکنه این اثر امام مالک اشخاصی میان در نزدش میان سوال میگه ای امام مالک این اهل الاهواء یحتجون علینا به هادا الحديث کل مخلود نیوزاده استرانا و کره این بحث که نمیخوام بگم این بحثی این کار فترات چون همین فترات خیلی مشرف الحکم کفتن ایمان اهل احوا اهل بدع اینی هر کسی این را این حدیث را نگرفت و بر عقلش اهل احوا و اهل بدع این سیماه اهل بدع این حدیث را با عقل نگرفت و کنه عقلشون گمانی و شکیف ولی عقل ما عقله نظری و ترجیقی کمان راجحه یقین داریم فاید دیدیم که حس و ما هم خارج از این از صحیح بآخر و صحیح نیست امام مالک میشه که اهل احوام به این حدیث احتجاج میکنن امام مالک شمی پاسلت میدن گفتن احتجاج علیهم با آخره، و به آخرش بشه جنس بکن قالوا گفتن قالوا ارايت من يموت وهو صغير رسول الله اي يعني ميبينيون شخصي كه مثلا كوجيك فوت بشه آرا فرضنده مؤمن باشه فرضنده غافل رسول الله جواب دادن حالا اين مؤمن يم... اين بهشتي يا جهنمي خب در اخر انسان خلقتش باز مثيلش مشابه بشه رسول الله فرمودن الله أعلم بمكان عمله ما كانوا ممکن و عاملین الله اعلم ممکن و عاملین خدابند از آن چی که بهش عمل خواهند کرد یا بعد از اینکه که خواهند اومد چطور عمل می کنم خدابند خداوند خدابند علم قبل و علم بعد رو هم داره الان بباستش رو بسر مفصل خواهد اومد این یک از ادله بود بعضی هم اشکال اشکال آخریشون اشتباهاتی هست که در ذهن شده. گفتن اگر قراره فرزند کافری روی فطرت باشه. پس باید شما روی نماز جنازه هم بکنید. بیش. نماز جنازه هم بکنید. نذارید پدر مادرش رو تربیت بکنن و باید پدر مادرش هم باید بگیریدش و ابن مسجد و کشمی فساس جسل همه دیگه مول خود کنیمون مول مترمونات نیست نگاه بکنید اصل اشکال رو از کجا گرفته شده اصل اشکال و اشتباه اینه که احکام کفر دنیاوی متعلق به احکام کفر را ستبته با آخرت دادن یعنی قاتی کردن بین احکام کفر دنیاوی و آخرت احکام کفر دنیاوی و احکام کفر اخروی ما شکی نداریم که فرزندان مشرکین در دنیا احکام خاص خودشون دارن پدر مادر داره پدر مادر باید تر پدر مادر باید سفرتش بوده بگیره وظیفه پرورش و پرنسکاری اون فرزند راهده یکیه راهده ی پدر و مادر من خسته شدم لیکن بستم الان خیلی هم نمونده لیکن الان سعی میکنیم که چون این موحظ خیلی نیاز به تمرکزم داره سعی میکنیم اون اونطوری که هست این مطلب درست برسنی که درست بگیرید چون مطلب خیلی سنگینه این مطلب یک کمی خیلی هم سنگین نگاه بکنید در بحث کفار بحث این احکامی که ما گفتیم در دنیا احکامی که یک فرزنده مشدکی که روی پترت اسلام خلق شده و برگردن پدر مادرشه دلیلی بر این نیست که اونها روی فطرت خلقت نشدن چرا؟ چون ما از حال عاقبت اشخاص با خبر نیست. چه منفی چه مثبتش؟ دو تا مثال بهتا جنگ اگر الان بشه ما وظیفه بره که تا تک سال بگه شما مسلمان هستی شما مسلمان نه. وظیفه من اینه کنی. مهم اینه که البته جلوی مایید شدن ما باید مقاومت بکنیم درسته؟ شاید مسلمونی هم در دنیا کشته بشه. خب اگر در آخرت خود دنیا رو به خودش خیر چون خداشناس وقتی اونجا بهشتی در دنیا ما وظیفه دیگری در مقابلش داریم. مثل یک شخصی که روی ما هجوم می‌کنه مسلمان ما احکاب دنیاوی جره رحکا مقرمی نباید خاطی میکنی همونطور برعکسش منافقی که هست کافر یا نه منافقی در درک اثر من نار هست خاییم در جهنم رو دارند در این ای دنیا نمادونشو خونده میشه؟ بله کشته میشن؟ نه چرا حق بکبروشون انجام داده نشد؟ چرا؟ در احکام دنیا ما وظیفه دیگه داریم در احکام آخرت یه وظیفه دیگه هست که در دست خدا خود ما هست. میشه من برونم مثال بزنم. حالا این مثال زیاده. پس گفته رسول الله صلی الله علیه و که هر مولودی روی فطرت کلکت میشه مقصدش است که روی آن خلقت شده و بر اساس آن خواهند خواهندید و عقابی خواهندید پذیرفتن نه خواهندید نپذیرفتن دی عقابی دید. بر اساس اون فترت شد. و اونم در صورتی که معارضی نیومده باشه که چی؟ اونا رو گمراه بکنه حالا این شاید دیگری خواهد اومد مصادیق کتاب و علما سنت در تقابل این در خود فطرت کل و لهو الدين على که کتاب چه مفاهیمی داشتند و کدام مفهوم درست ديگر براي حافظه يا حديث شد انا خانه خانه وكيف صلى الله عليه